بله در روزی که گذشت نه دیروز تا الان چندین شرکت کننده برای استیک کار فرستادن شرکت های از نقاط مختلف ایران با لحجه قمی نمیخوام حرف بزنم عرضه ی محلی اینجا هم آبگوش خنویته تازه اونم لپ پشته مون. اگه مگه جای دارید منم بیام بغل علی مرسا که اونم بخواید منم بیام. جمعمون جمع, جمع میشام. بعد از پشت سرگذاشتن گذاشتن همه پیشنهادها و نگه‌داری ها و حدس ها میرسیم به استیک امروز جایی که چندین شرکت کننده روی گاز استیک میان و بهترین غذاشون رو برای ما معرفی میکنن. قبل از اینکه بریم سراغ شرکت کننده های امروز یک تلفنس کوتاهی میگیریم و دوباره تا لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود. برمیگردیم. آیا در شهر روستای شما غذاهای خوشمزه و خوشعطر فراوانی وجود دارد؟ آیا فکر میکنید غذاهای شهرهای دیگر در مقایسه با غذاهای شهر شما هیچ چی نیست؟ آیا دوست دارید خوردنی های خوشمزه منطقه خودتان را با دیگران تقسیم کنید؟ استیک محلی است تا شما به غذاهای خوشمزه شهر و دیار خود فرصتی برای مطرح شدن میدهید با حضور در استیج وزیر نظر استادان خوششته های استیک شما نیمی از راه موفقیت خود را طی خواهید کرد. استیک مسابقه برای شما که خوشمزه ها را فقط برای خود نمیخواهید. در استیک شفها و کودیوسر های و مزه شناس ما شما را به بهترین شکل هدایت می کنند تا بتوانید غذاهای مورد علاقه خود را به دیگران معرفی کنید. هر غذای خوشمزه هر لحجه محلی، و معرفی هر رستوران یک امتیاز استیج از رادیو پسوردار فرصتی است برای نشان دادن قابلیت های غذای شما و شهر و دیارتان است بله بریشتیم بازم حالا میرسیم به شرکت کننده اول, اول اولین استیک منافی یکی از. غذایی معبوب و لذیذ گوشت قلیه ماهی. وام نه قلیه نیا قلیه ماهی که خود ماهی ساده انگساد جای گرفته باشی، داری خونه ویداساناک پاکش کنه تا ساعت 6 دیگه ماهی کو تو باشه. مرسا. خب دوست من من نوع نگاهت به قلیه ماهی رو دوست داشتم. قشنگ حس ماهی رو تو صدات شنیدم. سعید دوست عزیز اونجایی که قزات لواب مینداخت و من خیلی دوست داشتم. جلال عزیزم اگه دقت کنی اون ماهی که تو قریه ماهی شما بود و اولین بار جد پدری من پخته بود <تصفيق> به افتخار جد پدری شف یا همون برنامه سلام خب غزه مدرق من و در واقع معشوق خوراکی من اسمش که اکتابهی با پولوه جلال قربولت برم انقدر شما خوب با این قضا ارتباط برقرار کردی و توصیفش کردی که به نظر من شما بیا اینجا جای من بشین پروڈیوسر باشه من برم که آفتابهیتونو بخورم مریم جون معلومه که شما یه شکموی تحصیل کرده هستی بریم سراغ شرکت کننده آخر امروز شرکت کننده چهارم سلام باشی یه غذای هستش برای خط اسمش جوشواره است البته هر دوستش نداره منتهام من بی نهایت دوستش دارم نه از طعمش گفتن نه توضیحی بیشتری دادن کارشونو متاسفانه دوست نداشتن دوست عزیز منو یه کار خیلی مهمه توی کارم از منو غافل نشید تو دو نظر منم بدون لهجه توضیح دادن و من نپسندیدم ببینید من رنگ صداشون و خب طبیعتاً غذاشون رو دوست داشتم ولی با همکارم موافقم که جزئیات بیشتری رو مثلا می‌کردم. از یس تلفن می‌کنم. ما یه قزایی داریم که الان دیگه بینال المللی شده. اسمش هم کل گیپارد. دوست هستید در صورتی که با خوردن این غذا تا 48 ساعت دیگه چیزی نخورید من می‌تونم براتون کار جنوبی نبود خب ولی مهرت به دلم نشست. ممنون. سلام فرش جان قربونت برم. خواستم امشب یه غذای همدانی بهش بیاد بدم. بهش سیب میگن سیب زمانی کوره ای. من تو که می‌دونم تو همدان حداقل 10 مدل آش وجود داره. خب از اونا برامون نگفتی سیب زمینی پخته که همه جای دنیا همین ریختیه که میگم همی دنیا یه آبگوشت فلفل دارن خون خون؟ یعنی چون؟ اه... باب دل ما جنوبیان آه. بعد شما سیب زمینی پخته به ما حواله می‌دی؟ سر و نون سانج، اون چربیه اون گوشت با زعفه رو جنوب بهمالی با گوشت بیریون، آخ از نون زیر کباب خوشمزه تره اونو. آقای جان، توصیفش از نون رو من خیلی دوست داشتم. من شخصا با کسی که اینقدر از غذا لذت میبره به خوبی میتونم ارتباط برقرار بکنم. اما یه تا مازندران زندانی دلیل غذا به اسم ترشکاریه. یا ترش قلیو کاش این دوستا میگفتن که قلیاشون ماهی هم داره یا نه ولی من شخصا لهجهشون خیلی داره. من هم لهجهشون رو خیلی دوست داشتم ولی فکر کنم همه تمرکزشون روی لحجه بود و خیلی راجب خود غذا توضیح ندادم <تصفيق>